بیان آنکه این اختلاف در صورت در یکی نه در حقیقت را. اوز یک رنگی عیسی بو نداشت، و از مزاج خم ایسا خو نداشت، جامعه صد رنگ از آن خم صفا، ساده و یک رنگ گشتی چون سبا. نیست یک رنگی که زو خیزد ملال بل مثال ماهی و آب زلال گرچه در خشکی هزاران رنگ هاست ماهیان را با یبوست جنگ هاست کیست ماهی چیست در یام در مثل تا بدان ماند ملک از وجل صد هزاران بهر و ماهی در وجود سجدارت پیش آن اکرام وجود چند باران عطا باران شده تا بدان آن بهر در افشان شده چند خورشید کرم افروخته تا که ابر و بهر جود آموخته پرتو دانش زده بر آب و تین تا شده دانهب زمین خاکمین و هرچه در وی کاشتی بیخیانت جنس آن برداشتی این امانت زن امانت یافت است کافتاب عدل بر وی تافته است تا نشان حق نیارد نوبهار خاک سرها را نکرده آشکار، آن جوادی که جمادی را بداد، این خبرها وین امانت وین صداد، مر جمادی را کند فضلش خبیر، آقلان را کرده قهر او زریر جان و دل را طاقت آن جوش نیست. با که گویم در جهان یک گوش نیست هر کجا گوشی بود از وی چشم گشت هر کجا سنگی بود از وی یشم گشت کیمیا ساز است چه ود کیمیا معجز بخش است چه ود سیمیا این سنا گفتن ز من ترک سناست که این دلیل هستی و هستی خطاست، پیش هست او بباید نیست بود، چیست هستی پیش او کور و کبود، گر نبودی کور از او بگداختی، گرمی خورشید را بشناختی، ور نبودی او کبود از تعذیت، کیف سردی یخ این ناحیت